به نام خداوند جان و خرد، تدیم برتر اندیشه در بر نگیرد. سلام ارز میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم و جعفر رو بر همه شما مسلمانان تبریک میگویم. سلامتیت ان همیشه موفق باشید و شاد. از برنامه پنجره برنامه پنجره‌های روی ماهتاب شما شبکه‌ی فرهنگ رادیو می‌شنوید من حمید رضا هدایتی راد هستم بر مهمان عزیز یک, یک شب به ما آقای دکتر استاد فریدون جنیدی گفتن دکتر رو نگید استاد فریدون جنیدی هستن که در خدمتشون هستیم سلام از میکنم شب شما بخیر درود بر شما روزگار شما خوش الحمدالله حالتون خوب شده از یزدان بله من چون همتی صداتون یه مقداری اون خشر رو داره اما حال عمومیتون خدا رو شد خیلی خوب آخر باید روزگاه روبه بهی بره خواهی نخوری فرمان و خداونده هر دردی به سوی درمان و هر ناراحتی به سوی آسایش این فرمان و خداونده خدا نگهتارتون باشه این شاید آقای دکتور امشان ما میخونم در مورد نبرد باز ادامه نبر در ایران و توران صحبت کنیم مثلا در آقاد من اجازه بدید ارز کنم که بلاخره رسید آدرس اینترنتی نه من بذارید اینجوری بگم. یه واژه ما داریم اینجا دورواژه که بجایی دورواج دورواج دورواج دور واج, واج یعنی چی؟ واج ریشی سخن گفتند در عوضا وچ بوده در, در پهلوی شد ایواج ایواج یعنی آواز در فرصی شده باز در واژه و بعد از دبان این از همین است این هم وچ در امساس هم در سرانسکریت ریشه گفتار دور یا همون تلفن بنیاد نیش هستش هشتاد و هشت نوود و شیش نگاه آقای دکتر موشفظ هشتاد <تصفح> 2784 و آ... بقیه رو لازم نیست برای که هنوز تا نوروزم فرصت داریم تا اینکه این به این سایت صورت الگوی اینترنتی عنوان شروع مجدد شروع کار بکنه بله اون فقط آوردم برای اینکه شما خواسته بودید آها باشه باشه من این رو به خدمت شما عرض کنم والا پایومای که شما همین نرسیده دو ساعت قبل اومده و من دیدم تو پیامک را گفتم که خیال شما رو را راحت کنم در همین آغاز و عرض کنم که تلفن های برمومه 222-485 222-485 222-5288 دوسف 222-5288 دوسف و شماره پیامک ما نوسی هزار دو 58 3، چه 5، 5 8. تو که من قبل از برنامه و الان باز میبینم خیلی از دوستان پرسیدن که ما مثلا در شهر خودمون رو اف FM چطوری پیدا کنیم. هر شهری معمودش متفاوت هستش. اونطور در تهران 26ی موج FM، 26 ه شما. رادیو فهرست را میتونید داشته بیت و اگر روموج ام دبیو رو خواهید داشته در همه ایران 558 هست. 525 هست. در ام ماخره پریامه کنم و ازم کنم پایگاه اطلاعاتی ما، آدرس اینترنتی ما، دبیو رادیو فهرست هست. راژیو را فرهنگ dot آر آی هست آی آر آی آر, آی آر هست بجرم به چیز دیگه فکر میکردم چون بجرم میگرم چقدر ما تورگیشید من این آدرس ها رو بدم حالا خودش زمانه برامه رو, بر رو, بر رو اما باید گفتید این اطلاع رسانه رو باید چون منتظر هستند و پیگیر شما میتونید از طریق ماهبار عزیزانی که خاصی زبانانی که در خارج از کشور هستند و آشنا و دوستان هستند میتونید توانید بگید که از طریق محواری روی بخش راژیو ها رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه های راژیو فرهنگ هم تا برنامه ما رو اشنبند ما دنباله نبرد ایران و نبردهای ایران و توران رو با کلام و واش با صحبت میشه شه صحبت دیگه درسته صحبت میشه شه بگه آوازه آوازه باشی باشه گفتار میشه گفتار نه. گفتار آقای دکتر استاد فریدون جنیدی خواه به بیاد داشته باشید هم بهبود یاف که خود گفت که در این شادی باقیم گستهم هم دو جمع نشده منطقه خود این یک راز داره برای که هم میشته هم که بعد هم شد بستان این خوبی بخش از ایران دیگه این خواهی نخواهی بعد از اون نبر و کشه شدن گستن باز بستن و گستن و بیستن وجود داره بنابراین باید در گیدگاه نویسنده شانومه خوب شده باشه ما صفحه 154 و و چهار شاهنامه ویرایش آقای استاد خیلی دونجونه دفتر سوم بفرم است. بیوری گزدان همه کوهوها رو بیابان و دشت و هر سوه همی گرد لشتر بیرشنه که خسترو وقتی که اومده به لشتر بیرشنه از کسی ایران نبود بیم و رنج هم با باخیشتن شاه گنج این مصر رو شما توجه بکنید که ایرانیان وقتی می به جنگ حتی برای که این کشی خرج خوب چون رو دوشی کشاورز و بیچارگان و کارگران و مردم و محل اینا نمی شاه خودش بخوبش گنج می که در کشور بیوانه حتی از اون گنج خرج بکنن و هر چیزی که لازم است بخرند در حال که دشمنان ما از چهار سو حمله می ما همه رو می کشتن بچه ها رو به ساعت می رو به ساعت همه جا رو خارهت میکردن همه جا هم میسوختند بعد میرفتند این درست عکس بیاد داشته باشید که موقعی که توس با ایران حرکت میکرد به طرف توران که خصوی فرمان داشت داد که کشاورز یا مردم پیشور کسی گونه بندد به رزمت کمر نباید که آزار بیند بر چون چنین است آوین تخت اما درست هم مبارکس کردن هم باره در طول توری در هر صورت همیران واخیشن شاه گنج بر این گونه چون شاه لشکر بساخت به ساخت به گردون کلاه کی برفراخت سفار توران از آن سوی چاچ نشسته و آرام بر تخت آچ از این نبردی که منجبکششیشین پیران شد و در حقیق گوریز سپاه توران هنوز خبر نداره همی خواست کایت به پشت سپاه یعنی تک که هنوز جنگ ادامه داره یا هنوز آغاز نشده میخواست بیاد که یاری برسون به نزدیک پیران به رزمگاه، همه خستگان از پس, پس یکدگر رسیدن گریان و خستجگر همی هر کسی یاد کردن چه دید از آن بد که زیران به رسید، سفیران و لحاک و فشید برد، از آن نامداران روز نبرد. به زنهار شد لشکر ماهمه، همه، شد از بیشبونی رمه. خروفی لسه لشکر بر درد، روخ نامداران شد از درد، سرد. از آن درد بکریست، افراسیا، و کند، مول و همی ریخت، آب. از این جنگ پور و برادر نماند بزرگان و سالار لشکر نماند به و برزد یکی باد سرد پسانگه یکی سخت سوگند خورد به یزدان که بیزارم از تخت و گاه اگر نیز بیند سر من کلاه یعنی که تاج دیگه در آین ها بسر بس دادن تاج نمیدارم قبا دوشن و از تخت من است کله خود و نیزه درخت من است. مگر کین آن نامداران خیش، جانجوی و خنجرگزاران خیش، بخواهم زکه خسروش شوم زاد که تخم سیاوش به گیتیم خروشان همی بود، زین گفت و گویزه خسرو آگاهی آمد بدو که لشکر به نزدیک جیهون رسید، همه روی کشور سفه کسترید. بدون برد و زاری سپه را بخوند، سپیران فراوان سخونها براند، سخون برادرش فرشید ورد، سروین و لهاک شیر نورد، کنونگاه کینست و خون ریختن، به شیر جیان اندرآویختن، بزرگان توران به افراسیاب بفتند و کردند، موجگان پراب، که ما سر به سر مرتراب بندیم، به فرمان و رایت سرفکنده ایم. در گنج بخشاد و روزی بداد دلش پرزکین و سرش پرزباد. بران بر مهادند یک سر که شاخت جیهون به دانس یعنی به طرف ایران. من چند بار گفتم و باز تکرام با می این جیهون گذرگاه امروزی جیهون یا آمودریان نیست. بیشتر از جایی به نام شهر چارجو در کشوری به نام ترکمنستان امروز که قبلا مر بود و خراسان بود از اونجا رود آمو به طرف دریای مازندران می‌رفت و در خلیج شیخو اسمعلی می‌ریفت به دریای مازندران و کسی که این خبر رو داده از دیدگاه علمی بررسی کرده ابو روحان بیرونس که می‌فرماد که براساس تغییراتی که در زمین، یا زمین لرزه‌ها اینا پیش میاد، گفت که رودهای آب گذرشون به دگرگون بشه تغییر مسیر بده تغییر مسیر به فارسی کوچه عربیش من گذر دگرگون بشه فارسی گفتم بجناب گذر دگرگون بشه بعد رو گزارش کرده آمودریا رو گفته قبلا همین بعد ها وقتی که اینجا به دست روسی افتاد دانفندان زمینشناس روسی دنبال کردن جریان رو و گودرگاه کاملا پیدا شد امروز معلومه که از کجا میگذاشته تا به دریای مازندان بریزه در جهت شمال این رود یکی شهری بود به نام دهیستان که از شهرهای بزرگ ایران بود و چون رود تغییر مسیر داد این کم کم کچیک شد و بعد روزم که مغول یورش کرد به طور کلی از بین رفت یعنی بیابونی هست که چند بار گفتم تکرار میکنم برای کسانی که تازه میتوندن به در حقیقت این کار منم از خاطرم رفته بود این که پرمودده بودید این, این بیابون هم باره خوش بود فقط همین سمسون که برخ میبارید و تا خرداد ماه بارون بود و زمین سرد می و برکاها پر آب می که می از اینجا حرکت کرد و تابستان نمیشد. من به خاطر دارم که یک یا دو برنامه پیش هم گفتن که از در جغرافیایی بسنجیم به سنجیم این درست رو گروی سهر آریزونای آمریکا قرار میگیره. اونجا اینجا یه هرچی سهرهایی هست و جالب اینه که چند سال پیش امریکاییان چند نفر یزدی رو که به کار و کاریز استاد بودن اینا رو بردن اونجا با خنات رو بردن در یه جایی رو آباد کردن خود اونا هست میشه گذاشن یز آباد و حالا بیابون همتون ما هم تو بیابونه. دست حکومت اسپنام و سلخمانستان که دو نام ها رو عوض میکنه مرد رو گذاشته ماری و از دستگاه فرهنگی ما و سیاسی ما هیچگاه یه اعتراض نشد که شما چرا نام چندیزار سال رو چهار رو گذشته ترکمان آباد چهار جهو فرسی یعنی اونجا به چهار شاخه بزرگ تقسیم شده که بعد همه اینا به هم می که هر کدوم از شاخه ها بزرگتر از خورد کارون هست. ببینید چه این رود گزارش تغییر پیدا کرد پس پیشتر که اینجا بوده اینها میان، این رود میانجی بین ایران و توران می شد. یکی سپه رو باید بدانسوی جیهون کشید یعنی بارد خاکی ایرانش پرانورنها درند یک سرک شاس جیهون بدانسو گذارد یعنی ایران گذارد سپاه یعنی بگذراند شبش نید خسرو یلان را بخاند همه گفتنی پیش ایشان برادین نشونیدی که شاهان. در دربار دو دشمنان خودشون کسانی داشتن که چشم بوش پادشا بود ظاهرن برای اون پادشا کار بگمه باطنان اخبار رو میرسند جاسوس بود عربی میشه جاسوس فارسیش برای بودن چشم بوش شا چشم بوش من میگم که چفه رو گذر سوی خارزم بود همه ریگ دشت از در رزم بود میعنی از شزاوار جای همون هامون موسسنی وقتی همین مصیبت باشه چند خاصیت داره ای اینکه طوفان گرد و خاک ازش عبورن نمیکنه. موسر حرکت میده ولی گرد و خاک کلا نمیکنه که بجوجری دشمن بود برای ثقوبین راجمند که اگر از روبرو گرد خاک به صورت میخورد خورد شکستشون قطعی میشد. مثلا سنگ و اینا هم نبود که سوم است و رو اون به این دلیلی سفاطور و تورون سفار را بدید بزنوی رویین و سف کشید جهان شد طراوی بو بو ها همه بر زاهن کلاه ببین که پیشتر از جنگ لازم بود که زره پوشیده بشه یا بر گوسونده ارسکن بپوشونن یا کلاه آهنی بگذارن برای که اینا اسید نیرستن ولی هنگامی که دو سپه به هم می‌رسیدن اینها این رو میگرفتن از بونه و استفاده می‌کردن دولشگر ستاده سه روز و سه شب از ایشان یکی را بیدم. بیدنم. ستار شمر پیش دو شهریار پرندیشو و زیجها در کنار. به روز چهارم چو شد کارتنگ به پیش پدر شد دلاور پشنگ. حالا اینجا تمام شانما هم همینطور اومده در حالی که اومدیم پدر حفاظی اینجا طوری که پشنگ پسر افراسیاب برد که من خیلی دقت کردم در کلیه شانومه های موجود این رو می پیشنات میکنم بشد شیده نزدیک پور پشنگ شیده پسر افراسیاب رفت بشد پور پشنگ که افراسیاب همه نسواب و همین ترتیب اومده و هیچ کسا توجه نگرده که پشنگ در افراسیاب بود نه پسر افراسیاب دوباره میخونم به روز چهارم تو شد تو کارتنگ، به شد شیده نزدیک پور پشنگ، به گفت که کت خدای جهان، صرف راز بر کهتران و مهان، به فرر تو زیر فلک شاه نیست، تو را ماه خورشید، بدخواه نیست، یعنی گردش روزگار همیشه برای تو خوب بوده، شود کوه آهن شد در یای آب، اگر بشنود، نام افراسی ببینید که وروی که سخنونو با ایران دشمنی می‌ورزم و یکی مرتبا ایرانیان در چون به طور اینونیون بد گفتن به خودتون ملاحظه فرمید که چه سخنانی درباره افسوس میگه. اتفاقا درباره افسوس بیشتر اوقات رد افسوس، رد یعنی پادشاه، ساروار، ژنرال. واقعا چی می‌خوستی؟ اا در مورد پهلوانش هیچ ایرانی هر کدوم از اینا رو هیچ کدوم با احترام صحبت کردم. حتی دشمنان ما دشمنان بودن دیگه بله شود کوه آهن چو در یای آب اگر بشنود نام افراسیاب زمین بر نتابت سپاه ترا نخشیر تابون کلاه را نیای از شاهان کسی پیش تو جز این بیپدر بدگوهر خیش تو یعنی توی همی که خصوص باشه سیا را چون پسر داشتی و رو رنج و مهر پدر داشتی یکی باد ناخشت روی هوا بروبر گذشتن نبودی روا از او سیر گشتی چو کردی درست یعنی موقعی که به تو روشن شد که میخواد خیانت کنی که البته خیانت هم در کار نبود چرا که خوندی این همه برقی تصویر گرسی بود از او سیر گشتی چو کردی درست که او تا تو تخت و سپاه تو جست خوبی نگه کن که پیران چه کرد بدون بیرفا ناسزا مرد و حالا اینجا عکس دیده میشه میبینید که تورانیان به ایرانیان دارن دوشنام میدن و دوشنامها ها همونطوری که اونا گفتن در شامنامه ما اومد که خصو رو گفتن بیپدر ناسزا بار مرد اونا بدگویی میکردن اونا بدگویی میکردن. هم اومده به خوبی نگه کن که پیران چه کرد بدان بی ناسزاوار مرد. همه مهر پیران فراموش کرد پر از کینه سر دل پر از جوش کرد. از ایران کنون با سفاهی به جنگ بیامد به پیش نیا که چنگ نه دینار خواهد نه تخت و کلاه نه اسب و نه شمشیر و گنج و ز سخیشان جز از جن نخواهد همین. سخون را از این در نخواهد همین. در یعنی فصل یعنی باب. عربه میگیم باب همون دره در فرصی در بوده سخون را از این در نخواهد همین پدر شاه و فردانه ترپادشه هست به دین راست گفتار منور و باست. از ایرانیان نیست چندین سخون سفه را چونین دلشکسته مکن به چه باید ستار شمر به شمشیر جوگند مردان هنر تو بشنید افراسی و این سخون به گفت مشتاق و تندی مکن سخون هرچی گفتی همه راست بود جز از راستی را نباید ستود ولی کم تو دانی که پیران چکرد بگیتی همه راه و نکی سفرد نبود در دلش و کاستی نجستی به جز خوبی و راستی از آن کو بر دشت کین کوشته شد یعنی به دلیل آنکه از آن کو بر این دشت کین کوشته شد زمین زیر او چون گل آقشته شد البته آغشته ما میگیم ولی در تودکستان هنوز آغشته میکن. اگر ما این به زبان یا تودکستان افغانستان بکنیم همیتون میشه از آن کوبرین دشتکیم کشته شد زمین زیر او چون گل آغشته شد یعنی آغشته شد یعنی هم آمیخت همه مرز توران شکست دلند زی تیما دل را همی بکسلند اگر اجازه بدید این میخوایی که فرصتون پیامکار دید میان کلامتون شکرد تو <تصفح> جما گرم کندم بودید من یک دفعه میام و ساجون از شاهنامه اداستان های شاهنامه برای ما میخوانند و عرض میکنم پیامکار شما زیاد هستش این فرصت رو از استاد میخوام که پاسخ بگم سلام استاد گرامی نام من محمد علیس اهل هیرمند هستم پیام من را از این روز دریافت میکنید پارت در کجای ایران که زندگی می‌کردند؟ خیلی مایرم که جواب را بدانم سپاسگزارم. بذارم شاد باشید پارت ها بودم. بودن یعنی شرق شمال شرق ایران بود و مادها در خوروران بودن و نیرمند و در نیبروزان بود این نامو هم دارد خوروران یعنی جایی که خوشید میاد خوروران یعنی جایی که خورشید در این فرو میره و رپیتوین یا نیبروزان جایی که هوا و گرمه های در جا بیشتره پارت ها خوراسانی بودن و در خوروران میزیستن البته اولوی ایک از اوقایان که ما رو خاموش که در قاچ رو خودشون قلم رو دست گرفتن درباره پافگاه خیلی صورت کرده حتی اینا رو عوا غیر ایرانی شما صحل سکاییان رو غیر ایرانی سکستان سیستان از آغاز وجود ایران با ایران همراه بوده به علت که گروه سکویان مهاجرت میکردن خب معلومه در سالها خوشصالی اونا ما وقتی که متابستان می رسیم بودیم که سیستان انبار انبارقلله ایرانه اما خوب خوشتالی هم وجود داره این ناچال میشهدن گروه های مهاجرت کنند حدود پنجا سال پیش آخرین مهاجرت از سیستان رو به طرف گرگان و این سیستانیان که هم جامعه خودشون رو هم گفتار خودشون هم موسیقی خودشون هم آینها خودشون رو همه رو حفظ کردن در گرگان و هم رو حفظ میکنن به کار کاری مشخور شدن و به صنعت کشور ر خیلی یاری می‌رسند. تا اینکه سیاست نادرست دولت ما به جای پنجمو گندم بکردی. و همه اون سیستم‌های هنرمند که پنجم به دکورهای دیگه رو آوردن مخصوصاً که از سیستم، درسته که مهاجرت می‌شد به جاهای دیگه تحت سکویی، اما این نه اینکه مادرشون که خود سیستم باشه خیلی زنی بود. این اتفاق در پنجاه سال پیش افتاد. این اتفاقیم هم میگم در پنجاه سال پیش. اونا که با هشابرزی رو عوض کردن و همه آورد. چیز رو عوض کردن. با خوش شدن حامون رو آینده چی هست من نمیدونم واقعا درد و دریب و با درود به جون ایدی و موجودی خنده روی برنامه لطفاً از استاد کمی در مورد نام های قدیم میمشد که سن آباد یا مرز یا توس بوده سآل بفرموید توس پایتخل خراسان بود و محل سپاه ایران بود در برابر لوریش های تورانیان همزایگان شمال شرقی ایران سناباد یه ش... روستایی بود نزدیکی توس که بعدن خوب بزرگتر شد با خراب شدن توس بزرگتر شد و سناباد جای توس رو گرفت و وقت بعدن چون که اما مشهور شییان در اونجا به خااص شد کم کم اونجا رو مشهد هم بودن مشرجز بودن که اکنون مشهد بود دور در مدیران رادیو فرهنگ با برنامه های خوبشون هزرت نگهدارتون باشه سالها تو تا فروشی های روبهبی دانشگاه دنبال فرهنگ قنی نیاکان خودم یعنی شاهنامه بودن و ررمزرگش هاییان که استاد جنیدی بزرگ موجدی خوب خوب رادیو فرهنگ آی هدایتتی انجام شد. دینه نهایت پاس گذارم ارادتمند شما کوروش وزیری تهران. یه بخششو نمیخوام بخونم نمیشه در مورد خودم هم نمیخوام بخونم اما ببخشید. من, من اینو کام <تصفح> <تصفح> کم کم در بالا بردن نمره شما دخالت می حالا از این موارد اما من بگیرم <تصفح> <تصفح)> از کلاس شما <تصفح> آقای کوروش وزیری امیدوارم که همه ایرانیان به کارنامه درخشان نیاکارشون کم <تصفح> کم <تصفح> آشنا <تصفح> بشن بخونن و افتخار بکنم و راه برایشون گشاده بشه برای وحنوردی های بسیار پیوزمندانه در آینده درخشان ایران با سلام خدمت شما عزیزان میخواستم بدونم زبانهای اوستایی پهلوی و زبانهای دیگری که در ایران وجود داشت در چه دورهی به کار میرفت و زبان آریایی باستان چگونه بود و اقوامی که در حال حاضر در ایران زندگی میکنند آیا از نژاد آریا هستند یا با تشکر شهرام از سیسنگان مازندران شاد باشید کهانترین نوشته های زبان های آریایی جهان متعلق به ماست و ما بودیم که خطر به جهان حدیه کردیم البته بعدن هندوستان یعنی هندیان از در ریستین از ایران رفتن اونجا و یک کشور دیگه جدا برای خودشون ساختن و منطبع با این هدیه فرهنگی که از کشور مادر برده بودن بنابرای جست زبان شد نامش شد سانسکریت بعد از دوره اوستا ما یک دوره کوتاه در زمان اخوانشیان داریم که اون زبان رو پاسدی باستان میگن که سنگ نمیش داره اخوانشی اون زبانه. به اون زبان بسیار نزدیک به اوستا و سانسکریت با همون قواید. مثلا من یکی رو اینجا مثال میارم ما در اوستا در سانسکیری داریم هرانیا بعد در عوستا داریم زرانیا و در پارسی باسان داریم درانیا میبینید زرانیا تبدیل میشه به زر یعنی تلا تبدیل میشه به تینور که است در حقیقت هرانیا و درانیا و زرانیا سه تلفظ در اون زبان هاست دمانیه زر یا تلو. بعد از این دوران زبان پهلوی اشکانی و ساسانی که تا چند صده بعد از اسلام هم هنوز در ایران روان بود نمونه هایی داریم که نشون میده که روان بوده کم کم دیگه در صده 6 ششم شاید 7م و مثلا یورش مغولان این ها اگر دستگاه ها و سازمان هایی بودن که این زبان را به کار میگرفتن از میان رفتن جای همه اون رو زبان و فارسی گرفت و کلیه زبانهایی که امروز در ایران هست که همه ایرانیان، همه آریاییان، همه یک ریشه دارن، همه یک پدر و مادر دارن اینها ریشه در اوستا و فارسی باستان و پهلوی دارن و همه اینا مثل شاخه های مختلف یک درخت تنوع هست که ریشه در زمین پربار ایران داره. این دو تا سوال در این شونده و مثلا همده قدیمی نوم هستند پر قرص برنامه مطمئن تکرار میکنند یه بات پاسخ کفید مطمئن به احترام چون سوال کردن میپرسم از حضورتون آیا با این سخن موافقید که داستانهایی داستانهای از شاهنامه که در آن دوره ساسانیان دبایت میشود استواری کلام داستانهای قبل از آن را ندارد و یه سوال دیگه هم کردن گفتن اسم من شهناز هستش این به چه معنی است؟ روز به شاهناز <تصفيق> یعنی ناز شاه این اول به شما میگم خودم <تصفيق> بله همینه پس من برای چه سی سال کار کردم؟ بله تمام اون بخشایی که میبینید غیر استوبره به یک ایرانی آگاه وقتی میخونه میفهمه که این کلام فدوسی نیست چه از بخش ساسانیان چه از بخش‌های دیگه من اینا رو همه رو با در حقیقت حروف ریستر چوب کردم و در زیر نویس توضیح دادم که این به چه دلیل این سخن نمیتونه از آن فردوسی خداوند سخن ایران بوده باشه حالا شما اگر این رو به دست بیارید میبینید که احساس, با احساس همه ایرانیان و احساس من یکی بوده با درود بر استاد جنیدی از روزی که زندگی و مهاجرت آریاییان را مطالعه کردن به تاریخ ایران علاقمند شدن شهاب از کرماشان درود بر شما شهاب و درود بر کرماشان امیدونم که به زودی 90 رو. من که گفتم که برای مثل میشه. شنیدم. اگه خدا بخواد دیگه. شما رو من با آقای ایمان خدافرج رسوندم حتما رسید بوده. حتماً رو بگیرم به خدا کنه هر که هست اگه صدای ما رو و زوتر این کار رو انجام بده. من این پیوچت و دیگه مونده. من اینا میخونم سریع. در شما من تو عید امسال لیدر آثار تاریخی می شدم. نام لطفا معادم فارسی لیدر را بفرمونی رهنمای لید, انگلی، لید انگلیسی دیگه رهنمای میشه دیگه راهنما راهنما به گویش خوب رهنمای اگر نه راهنما بله در مورد کمند یعنی سلام بسوندن خدمت شما گفتن در مورد کمند پهلوانی توضیح دهید کمند یک است که البته با, با ذهر ساخته می شده و به زین آویزون میکردن طرف چپ طرف چپ فتراک زین آوزون می که در مواقع لازم ازش استفاده کنیم. اونطور که ما خوندیم در شاهنامه دو کس کمند شهرستخم داشته یکی رستم جهان پهلوان یکم سهراب کمند شهستخم بوده ولی رو هم رفته ممکنه که بسته به نیروی بازو کمند ها کداتر هم بوده شهستخم یعنی شهست بود دو, دو دست نه دو رو خودش پیچیده دایره شده یعنی دایره دایره شده دایره دایره دایره دایره دایره دا. که بعد میگرفتن میچه خوندن دوستر دو اینطور گفته شده که رستم شهستخم داشته چه نازیک بدیم رشته شهستخم کابوس کشانه میگه بعد رشته داره توهین میکنه رشته یعنی ریسمان بعد دوستان میگه همینی رشته خواهونی کمند مرا تو کمند مرا رشته میکنی ببینی کنو پس گذن این کمند این دو کمند در دست پدر و بود. یک روی یک صفحه از چیز رو از پیامک های شما رو خوندم <تصفح> حالا اومدم صفحه زدم که پیامک های درید بیاد حالا صفحه برد انشالله خواه هم شما می صحبت های آقای استاد جنیدی رو در باره شاهنامه فردوسی برای ما گشای می کنند در برنامه پنجره های روی مخاطب که تلفن هاش 220 485 220 588 20 و شماره پیامک 30558 هر زودتر تماساتون تلفن رو بگیرید ما براموزیدی کنیم که بتونیم به امید خدا هم رو کنیم و استاد جواب سوالات شما رو بفریم دنباله گفتار افراسیاب به پسرش بود با هم دوستن نه جنگ شکستی شکست در بود باید ماند به جنگ. مبارز تراکنده بیرون کنیم از ایشان بیابان خون کنیم آین جنگ ها می بود که یک کس می بیرون را جنگ می خواست. یک نفر برشون می موند یعنی میگه که پهلوانانو بفرستیم تا اینکه تک به تک, تک به تک به هم چون این داد پاسخه شهریا و چو زینگونه جویی همی کارزار نخستیم زلش مبارز منم که بر شیر و بر پیل اصفف کنم کسی را ندانم که روز نبرد ندانم این نمیشنسن کسی را ندانم که روز نبرد فشانت برست من از با درد مرا آرزو جنگ که خسروست او در جهان شهر یار نبست و دو گفت که کار نادیده مرد شهنشاه کهی جوده بستو نبرد اگر گروه با من آید با آوردگاه و رو از جنگ هر دو سپه از ایدر برو تا میان سپاه از ایشان یکی مرد دانا بخواه که که از من پیام می رسان که گیتی دگر شد به آینو سان نبیره که رزم آورد بانیا دلش پرزکین کیم باشد و کیمیا چنین بود رای جهان آفرین که گردد جهان پرزک پرخاش و کیم گنه گرمه بود پیران چه کرد چه رویین و لحاک و فرشید ورد. نزان گفتم این تو ترسان شدم گر پیر گشتم دگرسان شدم ولی کن همی ترسم از کردگاه آرز خون ریختن و از بد روزگاه که چندین سر نامور بی گناه جدا بودند بدین روزگاه چه با من به سوگند پیمان کنی بپوشی که پیمان من نشکنی بدین کار باشم ترا رحنمای که گنج و سپاه هست بماند به جای هران کن ایران نهی یعنی اون بخشای از ایران که این طلاق میشه و ما تصرف کردیم هموارم همینطور بود از طرف توران مرتبا بخشوی از ایران تصرف میشود هران بومبرکان از ایران نهی به فرمان کنم 11انز توران تویی این ازدفه در مصطبا همومده تورکان و اون زمان هنوز تورکان در درشتای آسر مرکزی پیدانه شدون. توران بودن دولشگر برای اصاید رنج رزم همه روز ما بازگردد به بزد برای دون که جان تو را احرمان بپیچد همی تا بپوشی کفن جز از راز کردن تو را رای نیست به مغز تو پند مرا جای نیست تا از لشکره فیش بیون فرام مگر خود برایت از این کار کام بگردیم هر دو به آوردگاه برای صورت از جنگ چندین اگر زان که با من نیایی به جنگ درست کردم اصطلاع نادرسی چاپی بوده کسانی که الان شاهنامه دستشونه اینطور بخونن. اوگرزان که با من نیایی به جنگ نتا تو با کار دیده نهنگ نه این خود افراسیاب میگه بمون تا بیا سایدم شب سفا چو برسر نهت کوه زرین زر کلاه یعنی بامداد شد زلشکر گذینیم جنگ آورم سرف با گرز خواهی کرم چو بدخواه پیغام تو نشنود یعنی یعنی خسرو بدخواه ما هست بادخوا پیغام تو نشنود بپیچد بدین گفته ها نگرود به تنها تنخیش از او رزم خواه به دیدار دور از میان سبا پسر آفرین کرد و آمد برون پدر دیده پر آب و دل پرزخون گذین کرد از موبدان چهار مرد چشیده بسی از جهان گرم سرد سواری دمان از تلایه برفت برای شاه ایران قرامی تف که پیغمبر شاه تورانسپا گوی برمنش با درفشی سیاه همین شیده گوید که هستن به نام اینجا شانومه میگه شیده اونجا افزندگان همه ورد به پشنگ شنگ شما تصدیر کردی من درست کردم من شی... نویس شیده دادم من... شیده کار من نموده که اینا رو خط بزنم درست کنم همه نمونه ها رو آوردم در ریزنویس سنجیدم و گفتم به این دلیل نمیتونه پشنگ بوده باشه شیده بوده باشه اینا رو هیچ کدوم دست نبردم من به شاهنامه شما شاهنامه ای هستش که حالا از خام هست متا اون بخشی که مربوط شما اصلاح کردید درست کردید ویرایشش کردید اون بخش اشتباهش اون یعنی نمیستید اون اینکه که میخونه به هم بریزه قشنگ مشخص کردید بعد با این تلحقیت درستوری چاپ کردن وقت میفهمن همه خوانندگان تا به حال هر کس با ما رو شده مثلا یه بیتی هستش که پایان بخشای درسته پنج و دو بیت بعد از این یا حتی مثلا 500 بیت بعد از این تو مرتبه درست میشه هر کس به خونه میبینه که اون بیت پیشین به بیت پسین به هم یه پیوسته و همه افسورده بود این من یه سوال اینجا هست که من درست مربوط به همین موضوع هست استاد جان سلام آیا بعد از اینکه استاد تغییرات و تصحیحات خود را در شاهنامه اعمال کردن از نظرشان انسجام و نظم سابق مرده نظر فردوسی به آن بازگشته است احمد رضا کاکایی دوستدار استاد از احواز. شاد باشید و درود و احواز برمیم کاری که من کردم درست نظم گفتار تایدوسی رو نشون میده اونتا افسده هم هست حالا در آینده اگر خدا من بخواد که چند سال دیگه وقت وقتی نظرهام هم بیاد نظرهای ایران من هم باره نظر ایرانی هم اگر اگرچه کسی نظر نده دوتا کنون به من که زیفی دوتا از یاران و بنیاد منشابور یکی علی رزاهی به یک آه که در اون اول چند نظر دادن این نظرها که بیاد اون وقت ما میتونیم دیگه مطمئن باشیم که بخش افسوده افسوده است اون وقت شانام فیدوسی رو همونطور که فیدوسی نوشت همونطور به ملت ایران علیه باید همین شیده بود که هستم به نام کسی بایدم تا گذارم پیام یعنی از سپاه شما باید کسی بیاد بانشمند باشه که سخن منو بشنم. دلی شاخ شدن سخون پوز شر. و رو آب گرم. چنین گفت کیشیده خال من است. نیدایی منه. به بالا و مردی همال من است. نگه کرد دردن در کشیزان میان. نبود پیش جز قارن کابیان. ایتو گفت رو پیش او شاد کام درودش ما و پشنو پرد.